لا لا. الله يسلمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, الله>, على <الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والنعم الدائمة على عباده مشمئين. اللهم فنا جميع المشترين وارحمنا بالرحمن كي لا رحمة دیروز بحث رو از کنم راجع به مقام تنجیز صحبتی شد و بنا شد که یه مقدار کلمات خود محوم محدث استرابادی که در حقیقت مبدع این طریقه از خونده بشه. یکی دو تا مطلب کوچولو هست قبل از این که وارد خود بحث اصلی بشین که ببینیم چی گفتن و اشکالات برای برایشون چیه توضیحی من ارزو کنم وارد بحث بشین یه نکته این که عرض کرده مرموم اصطاق تمسل که به اطلاق کرده بودن نسبت به علم و جهر. و مرمومنانی میتوندان اطلاق نداریم. بخص گذشت و ما توضیح داریم اطلاق گاهی به معنی مجرد عدم قیده، عدم تقییده. کار مثلا میشه اسمش داریم اطلاق به مدلول تصوری. گایی هم اطلاق به مقدمات حکمت احتیاج داریم. میشه داریم اطلاق به مدلول تصدیقی یا مثلا لحاظی. اطلاق مقامی هم در این سیاقی هم درمی دیگه هم پس اما این اینه که اینجا محل کلامه به لحاظ لحظی یکی اطلاق تصوری است به اصطلاق مدلول تصوری مثل جهنی به ماه در این اطلاق نمیخواد حتما لحاظ بکنه هم که قیل نیاره اطلاق منعقد میشه مثلا در جهنی به ماه نمیتونیم بگیم مثلا آبی که از کوری مریخه مورد نظریشونه اما اطلاق محفوظه با لحاظ نمیتونه بکنه. یعنی که فز کردیم حالا از باب اجازه، امام محسوم مثلا سام لیک میاد آب از کره می ری، و آبم بودن نمی‌گذارم آن سرش برم. اون, اون جنی به ما این امتیاز بر سر می‌کنه مشکل نداره، ولی شاملش یعنی اراده نمیشه، احتیاجی به اراده نداریم، مجرد ادم تغییر کافیه. یه نحوه اطلاع این، صرفاً قید می‌کنیم، که قید نمی‌کنیم جه اطلاع. یه اطلاع اونی که نه لحاظ می‌خواد. یعنی باید لحاظ بکنه در مقام لحاظ باشه در مقام بیان باشه و لحاظ کرده باشه اون وقت اونهایی که مرده لحاظ میشه نسبت به اونها اطلاق داره ولی اگر لحاظ نشه امکان لحاظ نباشه اطلاق داره نسبت به مثل مثلا و مثلا مثال و بزن عدم صلاح به دلوک شمس مهمون ها اینی که نسبت به علم و جهر اطلاق نداره نسبت به علم وجعن علم الصلاه چرا چون تعقیل به علم که نمیشه مثلا اگه تو بدونی نماز واجبه واجبه تعقیل به علم که نمیشه اگر تعقیل نشود اتهام نداره این اطلاقی که اینجا هم آنلاین فرمودن اطلاق لحظیه یا مندول تسلیم استاد میفرما نه همین که قید نظر افلاق داره آلم باش یا نباشه پس این دو هزار که اختلاف نظر کردیم طبق این تحلیلی که ما کردیم اگر اطلاق لحاظی مراد باشه هم با مرمون های نیست اگر اطلاق نه عدم قید اصلا قید نزد و با به اقمه ساد کشم تویچ قید نزد خب قید نزده بلا اشکال قید نزد اگر این معنای اطلاق بگیریم اطلاق هست این قید نزده اینجا هم با مرمون استاد میشه لیکن در مقام استظهار خارجه چون این اطلاق مفاد حیعته یعنی علم سلات چون مفاده حیطه حق با مرموم ناینی نیست اطلاق به مدول تصدیقی باشه. نه اطلاق مدول تصاوری که عدمتر مثل جهنی به ما اینه. کلمه ما اطلاق داره یعنی یک اطلاق در ناهی مفردات جهات به مدول تصاوریست مثل ما یک اطلاق برمیگرده مثلا به جهات تصدیقی مثلا جعنی به ماهن اگر شک کردیم این آب که میخواد برای چی میخواد؟ میخواد مثلا آب رو بخوره یا مثلا آب رو میاد میخواد دستش باش میشه یا واقعا خود آبرو میخواد. حالا فرتونیم با ش وقتدم درشی دستش هم شوفت جعنی به ماهن هم گفته اگر گری باشه امر ثابته اگر نفسی باشه امرش باقیه اینجا تم که به اطلاق میکنه میگیم اطلاق سیره اختزار میکنه نفسی باشه. این نفسی یعنی این معنا یعنی اطلاقی که لحاظ میخواد میگیم چون نگفته جعنی به ما این برای دست شستن قید که نزده پس این اطلاق داره یعنی تو باید آب بی ال چه من دستم بشورم چه من دستم نشورم تقارن بده این به این لحاظ اطلاق این اسمش رو اطلاق لحاظی میگذاریم یا اطلاق مدور تصریحی می‌گذاریم اگر شک کردیم امر هم میشه بر وجود رسید این دیگه عدم قید نیست این لحاظ میخواد خواهد دقیق بودیم این اطلاق با اون اطلاق فرم پس هر دو اطلاق هم اطلاقی که مرگومه آی ناینی فرمدن استاد هر دو درسته اما در مانع نفی به لحاظ علم و جل حق با ناینی اطلاق باید لحاظی باشه و عدم قید کافی نیست این یه مطلب بود که نمی خواهد بود که اطلاق آب بگه کافی اما عنوان آب سرک بکنه همه خوا چون اطلاق جنبۀ قیود نیست به قول اون رغض و قول قدیمی‌ها حالا یعنی الان که این اصطلاح کم به کار می‌دن همه قید نظر کافی آب آب دیگه در مقام زین و ها مقام احسان مقام اونجا درسته دقت کردین پس اینکه یه مطلب دیگه در آخر بحث مرحوم استاد فرمودن در صفحه 65 چون بحث دیگهشون بهش تموم کردن در اون روایاتی که نه از قیاس و اینجور جور چیزا شده ایشون مثلا نه این مطلب دوم برای این برای تکمیل کلام مرحوم استاد صفحه 65 ایشون نه در اینکه حالا ایشون قبول کردن که اگر علم پیدا شد ولی از قیاس اون علم حجته چون علم طریقی صفر و نه الخوز و بالمثال به عقلیه خوز در مطال استنبات الاحکام شرعیه مرغوب و این آنه مرغوب و نعنه نفهم موردشون چیه هستم مثلا اینکه شاره مثلا قبولش نداره عقل قبول نداره نمیتونه موردشون چیه و علیه چون مرغوب و نعنه فلا یکونو معذورن لوحه صلی الله به الاحکام شرعیه من مقدمات الاحقلیه معذور نیست اگر این قطف تارش پیدا شد لیکن علا تقدیر کون قطعی هی مخالفن للواقع لتقصیر هی مقدمات یعنی اگر به مقدمات عقلی به از شر مراجعه کردن مثل قیاس و غرفیده شد بعد معلوم شد که این مقدم مطابق با واقع نیست این معذور نیست چون جهلش تقصیری خصوی نیست این خلاصه مطلبی که ایشون فرمیدن رو دارد چون این تقریب ممکنه درست، مثلا منعکس نگر مطلب درستون این مرغوبان ان ها من نفهمیدم مرغوبان ان به حکم عقل مثلا به حکم روایان و این نتیجهش اینه چون به حساب مرغوبان انه اگر عمل کرد به قطعی که حاصله از قیاسه بعد من تو قطع با واقع معذور نیست اینجا دیگه عوض نداره چون تقصیل در مقدماتی اصلا این مطلب رو این مطلب که همی بگویند برای این معنا این در کلمات آزیا آمده در تدرات آزیا این مطلب آمده در کلمات ناینی هم نیست اصولا مرحوم هایخوری خیلی آرازیار نقد نمی‌کنن بیشتر آراء مرحوم ناینی که خب در درجه اوله خیلی جام آراء مرحوم های آشفونس نسبانی معروف به کمپانی لكن خیلی هم اسم نمی‌برن آرا ایشون هست با عدم اسم گاهی هم آراء مرحوم آزیار اراضی قدس اینجا این مطلب رو مقوم آزیاد داریم. این مطلب از کلمات آزیه از ابداعات آزیه خلاصش اینه که اگر غلط پیدا شده از مقدمات غیر شرعی محضور نیست لو خطه عهود الواقع لیکن من مقوم آزیه میگم، ایشون چون تقریده نمیتونم نسبت بدن من مقوم این مطلب رو در تفسیر روایات آورده اون روایات اینکه به قیاس عمل نکنین به این راهانری دقت کنید این مطلب رو در اونجا آورده آغازی ها میگه مفاد اون روایات این است که انسان خوض نکنه در مقدمات عقلیه برای حکم شرعی وقت پس مفاد اون روایت اینه که اگر تبیین خطا او لواقع معذور نیست دقت کردید ایشون میگه پس ما اگر شما یه غرض حجته این همه روایت در با خیاس و غیر خیاس و رأی و این جور چیزا رو چکارش می‌کنید ایشون یکیش تا توجیه می‌کنه یک توجیه اینه این توجیهی است که مرموم آزیا برای روایات کرده در تحقیلات ایشان نهایت رفتار جلد جلده سه ملاحظه ترانی شده این میگه این روایات هم بکنیم برای معنا آه خوبی ننمشتن روایات بیا مرگوبونه شد ایشان هم چیزه همون روایات مثلا بود حالی اضافه باید به توها چیه این توجیهی است که مرموم آزیا برای روایات میکنن شد که پس این روایتو چیکار بکنیم همین تأکید دهی در قیاس و اینها خوب شما میگه غفلت داشتشو ایشون میگه مفاد اون روایات اینه که اگر غفلت پیدا شد شما معذور نیستید اند تبعین خطا حمله بر این معنا بکنه این یه توجیه البته خوبه اگه که یک کرد یه توجیه یا وازده که ایشون باز نبردن اون توجیه یازه که اصلا مفاد جدی اون روایت که شما به بیت مراجعه کنید این نمیگن قیاس مراجعه نکنید به آرا و استثناات اینها هدف اساسی این است که شما به اهل بیت او را اونی که حجت اهل بیته شما همیشه مراجعتون به اهل بیت باشه سعی کنید به طریق اهل بیت مراجعه کنید دقت کردیم این یه توجیه است که مرحوم آزیاب فرمودن شده مرقومه انی که ایشون ordenar به حسب روایات مثلا این کلمات اضافه کن تو درس فرمودن آقا زرد نکردند این, این معنی نمیشه، میشه موضوعی دیگه. نه دیگه موضوعی نمیشه. غرض طریقی ازش محفوظه. شما وارد نشو، خوب دقت می‌کنی؟ اما وارد شدی، غرض پیدا شد، حجته. اما وارد نشو. شما اصلا از غیر طریق اهل بیت وارد نشو. فرض فقط از رو با وارد بشی. اما اگر غرض پیدا شد، حجته. روشن شد؟ شما حالا در حالت اهل بیت با ریاض فقهی ما بحث موضوعی برای کسی صراحت واسه ملاحظه نه خب میگه و همون فرمای اونها قیاس عقل میدونن خب بله قیاس عقلی میدونن عقل میدونن چون لفظ آمد گفت که شراب و انگوره حرام شو گه هر شرابی حرامه میشه عقل شو دو میذره در میگه در قیاس این دلیل قطعی نیست اون عقلیش قطعی نیست ولی در جای عتقا دو جور ما از مقدمات عقلیه که هر معنایش رو فرض قیاس با باشه یا قاعده ملازم باشه الا غلط گذشته ما روایتی نداریم که به این معنوا خب اینا میگن حظوری روایتی که خودش دیگه به قیاس نامرادش که مرادش اینه که اگر خط امثال از پیدا شد در اساس مخالفت حجت معذور نیستیم شما این توجیه آزیاز میگم و حضرت سوستانم متعارف نیست خیلی آره آزی ها رو بیداری آتر چون بکنیشیم چون, چون نایینم نداریم مطلب رو نه هی رو گرفتن به خوز نه به خود عقل. حکم عقلی که پید. پیدا شد شما اصلا واردی مقدمات نشون در بالا در جوابی که از عبارت عبارت عبان دادن فرمودن مناقشه کرد در قرد چرا بر تو قرد, قرد. یک جواب که گذاشتی دیروزم بفت خرچه در قطعه از کجا غلط بدید این غلط نیست این تبدیل به ذهن این یه جواب دیگه است اصلا شما خود در متاوله عقلی نکنید اصلا تو قاعده بلازمه نرید که اگر رفت اینو علم پیدا شد اون علم حجت لاکن معذور نیستین انده تبیین المخالفه من منتقد هستم من معذورم نمی‌فهمم چی فرموده خب بالاخره بحث سر اینه که اگر قطع پیدا شد این حجت هست یا نه که حجت ذاتی می‌بینی خب حجت اگر حجت شد چرا معذور نباشه و چرا حجت دیگهالا معذور نباشه قدرا هم که طریقی می‌دونید من هنوز نفهمیدم که اصلا مراد حالا شما میگی نهی از خوض حالا خض که تلوع نه از خوز. حالا رفت ملازمات اخلیه و قطع پیدا کرد چی آخرش چی؟ حجت هست یا نه اینکه تبیین خطا ممکن تبیین خطا مثلا مسائل احکام شریعت زور ظهور امام مهدی میشه یا روز قیامت میشه تبیین خطا که اینجا نمیشه که تو این دنیا که تبیین خطا نمیشه مگر تبیین خطا برای حجت روایی پیدا بکنه ولی خب تبیین خطا که اونم تازه حجت به اونم که غیبت نداره که تبیین خطا در احکام شریعت مقدسه یا به ظهور امام یا به روز قیامت دیگه تبیین خطا دیگه نداره این معذور نیست یعنی چی نهی از خورد همیشه نهی غیریه نهی غیری موجب خلاصه شرط خوض کرد این خلاصه اون نهی که در روایات که شما میگن معنی اینه حالا خیلی خوب نهی از خوب برای کرد. کرد قطعاً پیدا کرد خلاصه چی میگم شما که قائل به حجت ذاتی میگین حجت پس چرا معذور نباشه چیزی حجتیه از این چیه حجتیه؟ اصلا معنای حجت منجزیت و معذریت مرومه های خویی مثل استادش مروم ناینی تطمیم کشم حجیت اما در مثل قد قطعا باید منجزیت و حجی اینا باشه چون که کشفش که تام بده دیگه تطمیم کش داره اونجا معنی یک کاشف تام معذر و منجزه یعنی چه که شما معذور نیستید انده تبیین این اینانی چی هستن؟ چی؟ آدم چی می از این اباره؟ پس عمل نکنه دیگه اگه بنامش معذور نباشه پس بکنه عمل نکنه پس هم برگشتیم به اشکال اول بگیم به قطع عمل نکن یا به قول خودشون علم اجمالی منجیسه به لخری عمل میگه من قطع پیدا کردم شارع بختم و قدمات عقلی نرو رفتم و قطع که کردم چون اگر مخالف باشه من معذور نیستم پس چی آدم پس انجام نده پس بگیم حجت نی اگر بگید حجت پس چرا معذور در باشه خب گردم بکنیم اگر حجت نیست اگر معذور نیست پس بگید حجت نیست شما حجت شما چطور میگین نحیه در خوز رو میگیریم بر میگردیم این که مثلا حجت نیست اند تبعین خلاف نه خویر تبعین خلاف بکنه. الان این مطلب ایشان هم من خیلی میدونم خیلی یکی کیکی به واسه چون مطلب رو آزیار بودن من گفتم یه توضیحی داده بشه این راج به این مطلب حالا برگردیم بعد از این مطالب یعنی از هم اشاره کردیم برگردیم به اصل مطلبی رو که امروز به نحوه اشاره از اخباری ها نقل کردیم اطلاعات خوئین نظرهای آزیار قبول داری یا نه ظاهرا که بله دیگه, دیگه. که تو مصباح. من از صفحه پنج تو تراش و تعبیر عدم به خاطر مقدمات خلاصه الان غرض پیدا شد این غرض حجت نه غرض حجت اولا میکنه چون اگه عمل چرا معذور نباشه به خاطر مقدمه ای این پس اون حجت نیست بود غرض حجت خب نمیشه رو به اختیار لای خب خوب خیلی خب بسيار خوب ال استرا به اختیار بالاخره پس اخیاری نیست بالی بله، چست خوش از پشتو میندوزه کی وسط راه نمیشه بسیار خوب انداخ الان به هر حال شما الان میخام بگین چی نه از خلاصش این. چون اون نه اینکه قیدیه خوز در مقدمات که قیدیه اینکه اون مقدمات که نفسیت نداره که یعنی این آقا الان نمیتونه تبعیض نکنه از این غرض ايش چرا که غرض قرد... خب تا... اگر تبعیت کرد و حجت بود به حکم شما و شارعن امضا کرده به حکم عقل بود دیگه چرا معذور نموشه خب اگر بگید احتمال پنجاه پنجاه است که معذور باشه نباشه باشه مقدمات پس اگه معذور نیست حجت نمی‌گذره میگه حجت تصویر این مطلب که بگید حجت اون لا که معذور نیست معذر نیست خیلی اگر تفسیر در مقدمات کار بدیه و منشأ میشه که این معذور نباشه خب در این قصدی که از ظاهر غیر شرعی رفتین احتمال میدید یا ته احتمال داره میدونه اگه روز قیامت ماخذش میکنن چون تحصیل که الان که نمیدونه روز قیامت دیگه اینکه تبیین خلاف این طور نیست که شبور این مسئله این نیست که مثلا پدر و بچش چیزی گفت بعد از دین شاید معنی تبیین خلاف شه اینکه این نیست که این تبیین خلاف به ذره احکام شرعی حتی اگر روایت شده اون حجت رو اون که درکی نیست که خلاف باشه تبیین خلاف بشه به ظهور امام یا به روز قیامت دیگه خلافی نداره ما این نا وا بکنه شما چی میگید نا واج بکنه حالا نا وا از قطعش بکنه, بکنه. تبعیت <تصفح> الان دیگه عزیز من گفتین شما دلین یه دفعه میگید قطعش باطله یه دفعه میگید خوز در مقدمات نکنه چه حالا این امره خلاف انجام داد اولا خوز در مقدمات این حرام نفسی نیست حالا انجام قطع بشه چی چکار بکنه نکنی یا بکنه نمی تونه نکنه خب تو با... اگر رو چرا معذور نباشه آچه چه حجه دیگه معذور نیست چون مقدمه حرام شده مقدمه باشه چیکار به خود حجه پس مگر ببین چون مق... چون احتمال داره که خطا باشه و معذور نباشه مثل علم اجمالی هر قطعی که پیدا بشه احتمال میده پس این حجه نیست اصلاً این چجوریه موقع مخ... من نمی‌فهمیدم یعنی که این چجوری تاثیرش رو این مطلب هم. هم حجت باشه هم معذور نباشه این چه حجتی که معذر درسته میکنه اما قلیل در حد حجتی نیست که معذور و منجز نباشه معذر که ازش اون معذور نباشه از خ... اگرم مرغوازیان به طور کلی نه متو آی خودی که مرغواگه مرغوبانه شرع باشه کلمه شرعاً افتاده باشه لو خب صحابه علومو که این چیزو حکم نمیکنه که تو قوانین که علو چین چیز رو حکم نمیکنه و به نظر ما که خب الان بعدم توضیحش میدیم که اصلا این علم طریقی نیست این کلی بحث نظر ما سر سر سامان نداره چون بحث طریقی نیست علم طریقی نیست موضوعی است بحث ساده و آخر بحث ان توضیحاتش خواهد آمد کردیم اولین کسی که این مبحث رو مطرح کرده به صورت مفصل و گسترده مرغومه مولا محمد امین استلافادیز که مدتی هم در سبکشون واقعاً هم این سفرهای مکه مشکل بود، گای بعضی وقتا دو سال سه سال, سال می‌موندند، دیگه از علی ای در حجم پیدا میکردن و یه استلاف بود در هزاره کیسی یک سال از یک هشت و دیگه یک سال در مکه مون بود بو جارالله میگفتن این جارالله هزمخششیم سر درش می‌نیه. ایشون چند سال در مکه و مدینه بودن، این فباییه مدنیه مکه، مکیشون من نیلم. اما فواد مدنیه رو پیشون در مدینه اکشون رو خب انصافت هم مسادر پیشون بوده مسادر خواستن بوده مرد ملای هم هست مرد چیز فهمید جای بحثش نیست مرد با استعدادی اما خب یه کمی هم قلمش تند زبانش انصافت زبان تندیست که قبولش مشکل خیلی هنگ مشکل از مشکل مشکل تنه اسخریم برای اینکه معلوم بشه اصلا مطلب چیه اصل مطلب چی بوده اصلا این قطع مراد از این قطع ایشان چیه قطع حاصل از کتاب غیر کتاب السنه این کتاب یک از کتابهای چاپ جیدان شده که همینا آینه انجام درسه چاپ کردن به اسم فؤاد مدنی در زیلش حامشش به اسم شواهد مکیه هم چاپ کردن این ظاهرا یک نسخه ای چاپ قدیم داره از همین کتاب که با این حامش یک جا چاپ شده یعنی یکی از علمای جبل عامل بوده به نام سید نوردین علی ابن حسین آملی مرحوم سید نورالدین. ایشان کتابی می نویسه رد در قرد مدنیه همسی این کتابیش الان دست من هست که چاشه پشتش نوشه از شواه اما اون محقق کتاب که در کتاب نوشته از کتاب ریاض العلماء نقل میکنه اونجا اسمش الفوائد المکیه سلامو نه فوائد خودم تحقیق نکردم نمیتونم این چیزی بگم که اسم کتاب چیه شواهد مکیه ازش فوائد مکیه پشت کتاب شواهد مکیه چاپ کرده اما تو کتاب وقتی اسم کتاب رو میبرن به اسم الفوائد المکیه ایشون هم تصادفاً از علمای جبل عامل و مدرفا ساکن مکیو دار تا هم ساکن مکی بودن و در همون جا الا خدا خواسته بود که در مدینه این کتاب نوشته بشه در مکه ردش نوشته بشه. البته هم علامه محمدین استرابادی انصافا تعبیرات تندی داره، وجهش بحثش نیست بر اصولی ها مخصوصا. و آیه خدا رحمتش کنه سید نورالدین خدا که کنه فرستاده‌اش، اینم تعبیرات تندی بر علی ایشان داره. علاقم از یکی که چیز به یک دیگه هم بله همونطور تعابد جله و من یک خلاصه ای رو که حالا این دیگه به نظر من روح کل این کتابه در این چاپی که الان دست من هست در این چاپ ماده جهید صفحه 368 اون خلاصه شکل میگیم که من رو سر دعواس و چیه و بالجمله مدینه این مفعل مدینه که مال مرحوم خود ملا محمد امین است این که جای بحثش نداریم لاکن نسبت به فوائد مکیه هم کتاب حاشیه ایشانه اما حال اسم شواهد مکی است یا فوائد مکیه اون من تحقیق نکردم بله کتاب, بلا؟ کتاب اینجا, و اینجا شواهد مکیه بله میدونم اینجا نوشته چاپ شده به یلیاهدذ از شواهد مکیه اینجا اینطور چاپ شده. که عنوان کتاب اینطور لاکن ترجمه ایشان رو این ترجمه مرحوم سید نورالدین جبل عاملی رو در اینجوت در این صفحه 18 19 ترجمه ایشون رو از ریاض آورده و اما کتاب الفوائد المکیه اسمش فوائد مکیه است در خود متن کتاب اسمش اسم مؤلف معل... مؤلفی نوشته نشده تا مراجعه کنم اینی که خود محقق کتاب آورده از ریاض العلماء اسمش تو کتاب فوائد المکیه است همو پشت کتاب حواید المکی حالا من از حواید المکی اول مدنی اول میخونیم در صفحه 368 از همین چاب جامعه مدرسین دیگه این خلاصه خیلی تونده انصافا که خب شنه علما هم نبودیم کارو و دل جمله یعنی میگم خلاصه رو که مطلب ایشان رو وقت تخریب و دین دو مرتبه دین از بین رفت مرتن یوم توف یا نبی که همون باشه و مرتن یوم و اجریت قواند <تصفيق> یک بار وقتی که پیغمبر فوز کرد و سقیفه درست شد یک بار هم وقتی که هم قواند عصبی درست کردن این خلاصه رو بر درستون مطلب اشاره رو که معلوم بشه ولی اصطلاحات علتی ذکرت هل عامه فلکتب البته من از بعضی از مشایخ خالصین بودم شنیده بودم که ایشون گفته علامه روزی که علامه قواظی این کلمه عامه ایشون اننامه خونده اما این کتاب من که عامه نوشته علامه توش نداده چون من قبلا شده نقل کردم که گفتم علامه به نقل از اون آقا بوده اما اینی که اینجا هست فعلا توش عامه است ول اصطلاحات ولتی ذکرت هل عامه فلکتب الاصولیه و فی کتب درایت الحدیث فی احکام نه و فی احادیث ده، این دو روز دی نزدیم رفت یکی اون روز که من روز این درایت الحدیث حدیث این تقسیم بدیه حدیث که و مفصل و حسن و ضعیب و ناهی که عیو هال لبیب آن نهاده جمعایی قولون به جواز اختلاف الفتوا من غیر ابتنا اهداء علیزد و یا قولون المیت، قول المیت کل میت، من نهود اخبار انا لعمه الاطهار سلامدار به ان حلال محمد الله عليه و آله این رو وا ها حلال الی عمر قیام و حرام و حرام الی تو توسل که بین حلال الا قول میت حجته این چیزی نداره این تندی که این بزرگوار حاج محمد امین استراوادی مولا محمد امین اما مرحوم آقای سید نورالدین عاملی یشون در هاشیف هم لایخ با مافیه ها در کلام من اشتناه ول اقدام علا غیر الحق خیلی حرف هسته تندیه و نصف الى تخریب دین و تشبیحی به فعل اهل الزلال ف تخریب الى اول مرادشون همون لیل خرو... الموجب... اون تخریب اول موجه و للخوروج من الاسلام اند کسیر منر علما حالی هم تو مکه رو در محیط سنیایشون نوشته خیلی من میشه مطمئن بوده که دست سنیا باردش نمیگفته بیش از این تقریب میکرد چونانچه تقریب اول اصلا موجب خروج از اسلام شده یعنی قصه سقیبی این ده من العلمان و نعوض رو من الله این چه؟ مثلا بهشون فرموندن و من الذي اوجب تخریب الدین من القواعد و الاسطلاحات اللتی ارتکره الاسها این حالا کجا تقریب دونی درست میکنه فان لن لم لم نجد لهم ارتكاب قاعده و اصطلاح فيه خلاف الحق ولا خروج كلامهم عن حديث الائمه عليهم السلام الصحيحه اگر آمدن گفت این حدیث صحیح است صحیح نیست که این خروج از دین لازمه مییاد لازم فی حال من الاحوال ولا حصل عند احد من من المتقدمین و المتأخرین این نیست که بگیم علامه یا مثلا صاحب با عالم که اصول نوشه خروج از دین شده ولی لاحل هم تخیل و بله ولا حسله تخیل و خلله این تخیل فائل حسله فدین سوال مصنف این مصنف خیال کرده این استرابادی خیال کرده خروج از دین به سبب دالک نه منشه خروج شده الا به و جمیع القواعد و اصطلاحات و درایات الحدیث اینکه ارسام بندی حدیث لیس فیها خروج عن مذهب الائمه ولا عن مدلول احادیث هم صحیحه غیر الواجب به بما یوافق المذهب المتفق عليه، فای قاعدته و ای اصطلاحه و ای درایته علی مذهب الائمه و مخالفته لمذهب شیعه حتا ینسبوها الیه نسبت سبب کی اینها خروج از دین کردند و انم اوهام بل خیالات خود مرحوم مسنف محتربه اوهام و خیالات شده و ان امر اوهام بل خیالات علتی تخطرو علی بال المصنف به قلب بال و نه قلب به قلب مصنف آمده فی حال الغفله اول یغزه مخالفتن للعقل و مخالفتن للعقل و النقل به حسبها ی حسبها قواعد و اصطلاحات ایشون خیال نمیگه این اوهام خودش یه قواعدی است و يحكم بان با غیرها خلاف الموافق بالمذهب ولایذری بان نسبت ما نسبه او ال غیر این که میگه میگم دعوا دیگه گذشت از علمیش بان با ما نسبت ما نسبه او ال غیر نسبت او حق و اجل با این خودش خودی جزدی نه اینکه که اون اصطلاحات به مجرد این اصطلاحات خروجه از بشه خود از به خودشون خب نه دیگه تنده انصافاً طرف از قوائد علمی خارج شده بعد وارد مسئله این که چرا قولمیت حجت نیست البته این مبنایی رو که ایشون گفته یک مبناییست که بعضیشون گفتن همهشون نگفتن این اول روشن بشه که مرغوم ملا محمد عمین. این یک مطلبی هم هست که ایشون میگه که خیالات و اوهام بر مصنف علبه پیدا کرده این مطلب هم اجمالا درسته یعنی این مطلب متاسفانه در کتاب ایشان هست در چند جا نه اینکه یک جاله من بخواهم استقرار بکنم بله این طول میکشه. اما در چند جا ایشان متاسفانه خود مولا محمد امین استرابادی وقتی که بقول انوزیا کم آورده رفت به خواب و منامات و خواب دیدم و چی خواب دیده و سیران تابوز خوابیده و قرار متاسفانه ایشان یه مقدارش رو بله گفت که یک مقداری از این امور رو ایشان متاسفانه با همین خواب و این جور چیزا به اصطلاح ایشون انجام داده البته این خوابهای ایشان از همون از همون تقریبا اوایل بوده یک مطلبی اینجا است که در این صفحه 77 در انتخاب دیگه آخه تو میشه. در صفحه 77 در اصل بعضی مشایخ انه لما غیرت جماعته من العلماء ال این غیرت غلط تغییرات باید باشه یعنی علمای عامه گفتن شما اصولی ها چیز دیگه ندارین، کار درستی ندارین، لذا مثلا علمای ما مثلا همین در زمین کتاب یک کتابی از سنت داره دیگه یک مقداری خواب نقومی کن این صفحه هشتا چرا من المنامات عن صادقین علیه سان. و رأی تو به خط فلان بله من المنامات باز در خواب همجه یک مقداری از این خواب‌های بله و حد دستن یک اخی از ساله محمد ایبن محمد آبیرا که نشخصا یک قرصو علیه فلمان دیگه هم خودش یک مقداری خواب داره بله و هم متاسفانه یه مقداری از است که از بای این اشکال رو هم ایشان به ایشان میکنه یعنی این اشکال رو هم مرهوم آقای سید نوردین به ایشان داره که مثلا خود ایشان از خوابهای خود ایشان از حفه صده وقدر وقعا رأیتو فی سهر لیلت جمعه فی مکه المعظمه فی المنام فی النامی خاتبونی آخر یه نیم خود اینی که ایشون نشه اوهام و خیالات این درسته یعنی انصافا متاسفانه ایشان کتابی رو که نوشته مقدارم زیادی توش خواب و خیالات و اوهام داره من یه مطلب دیگهشم چون دیروز گفتم بخونم وقت تفصیل بیشتر مطالبش نه فردا چون وقت تموم شد در این صفحه 105 چون من دیروز عرض کردم که ایشون موردش از قطع اون قطع متارفی که یعنی قطعی که الان گفته میشه نیست فایده ایشون میگه که المعتبر من الیقین فل بابه این تصحیح میکنه سفیزاد و پنج ما یشمل الیقین الادی فلایت این و تحصیل و ما و اقوامن من افراد الیقین بعد میگه و باب الیقین الادی بابون واسه یشد و بدال کلی لبیب الیقوانی یا نفس یا نفس ول اصولیون بنا و علاها و الباب کثیرم من قوائده ها. که حجیت الاجماع از یادم وارشون من از سم کرارن مراد از یقین حجیت گرفته نه یقین و مصطلح و منطقی بقت بکنید ب... یعنی مخواد اینطور بگه بگید یقین در اصطلاح اصولی این همون حجیت حجت که حجیت الاجماع و کذالکل متکلمون یعنی ما خواهد بگه یقین در اصطلاح منطق و فلسفه فهم کرده، اما یقین در اصطلاح اصولین و کلامین یعنی حجت رو به و این شعرت انت علمون که ما علمنا فنزالا شرح عزدیل مختصر حاجبی از کردن این شرح عزدیل و خود مختصر و کتاب ابن حاجب همیشه جزو کتاب‌های اساسی و اصول در اون زمان بوده و الاشرح مواقف و مقاصد و غیره از کتب کلامی. یک کتاب و اصولی مثال دو تا کتاب کلامی ایشون می‌خواد بگه در کتب کلام و در کتب و اصول وقتی میگن یقین مرادشون حجت نه یقین در کتب فلسفه و حکمت و منطق مرادشون اون معنا نیست مراد ما از یقین در اینجا حجت نه اینکه دنبال یقین بریم اگر این شد پس ایشون می‌خواد در حقیقت بگه اینا حجت نیست از این کار به یقین نداره بحث یقین نیست این یک مرداد چون وصل تموم شد بله بلا ما هم عقیدون حجت این یعنی که اعتبار نداره که مشکله بعد میفته سر این که حالا ایشان حکم عقل رو چی گرفته مثلا فردای این موارد مردار میخونیم اگر آن خواست مراجع قبلیوک هست مثلا این جمله یه عبارت نسبتاً طولانی از اول معتبر علامه آورده معتبر علامه فقه در اولش اصول داره خیلی هم جمع جوره. ببینید چون بحث ما در عقل علام بحث عقلم بودیم به مناسبون تعرض بشیم در کتاب معتبر نوشته که ادله پیش ما پنج جاز کتاب و سنت و اجماع و دلیل و لعقل در این صفحه پنجه سه چاپ شده در چاپ جاید. در صفحه 57 وقت دلیل عقل رو داره و اما دلیل عقل فقسمان یک قسم رو برگردونده به همون دلالت اختضا و تنبیه و ایما اینها. البته که این سه قسمش قرار داده من سابقا توضیح داریم باید زنها اون باشه ما در بحث مفهوم شرطان ها توضیح داریم که مشهورشون چهار تا کردن ایشون سه تا کرده مشهور چهار تا یکی هم ما یعنی فردول اقل حکام اقلی که یکیش حسن و قبهه اما استثاب رو هم سه قسم کرده استثاب حال اقل و حال شر، و حال اجماع اصطلاحات خاصی است که اینشانا فرده توضیحاتش رو ارز میسن بعدم میریم به کلمات خودی ایشان که اصلا کل اصول رو باطل میدونه ایشان نه اینکه یعنی یکی یا دو تا باشه و الله محمد و آله طاهر. ک کل می خوونه آوررز میده ال اینشاالله